س و قبل و بعد از آقایی اون اسم شده بعد از آقایی هم این و بعد از حالا چرا اینا یه اسم بعد از آقایییم من یک فرادیم تا مفاهدت این اسو که متاخده این مثلا مثالی درام میزنید مثل و وضعی دن و وضعی دن ما درسیم دردارم نبید هم الان عامل اونجا تید؟ سر معمول اون که میده چی نوحه با معمول آمل همراه شده در دید اومده با معمول که تا باشه و مساهد شده در پسیسه تحقوب خیل سه در پسیسه سه با هم سه و دید این ده همه دید وابه مریت به معنی مهاد زیدان مفهولون مهاد مهاد مفهولون حالا دو جور هست ولو اینجا چند بیشتایی مهادی شد یکی مفهولون مهای حوییه یکی مفهولون مهایه تواحونیه حوییه نید تواحونیه حویی نید که زید و تا با هم مساهب و همراه شدن در سیزم و همراه شدن یه یه که مفعول در واقع این دو تا با هم مساهبت و همراه نشدن بلکه در توخم و خیال ما مثل و جعه و تو رو صرف و تریقه یعنی آمدم با تلوع... آیا میاد؟ میکنه اون زمان چون همون زمان تویدو افتاب هم با او همراه با هم بله در واقع اصلا دست به دست هم دادن و با هم آمدنی در کار <تصفيق> یا مثال گفتون رو و بدتریر من آمدم برای با مسیر مسیر که نمیاد بلی انسان اینطور تصور میکنه که وقتی در حرکت میفته جاده هم داره به همراه بود تریر هم با همزاه اینوش که مقبول معهی قسم اول که حقیقیه بیشتر است قسم دوم تو طبعه امیتیه کمتر است. و خود مفعول معه نزد نها مفعول معه نزد عرب ها خیلی نادر است یعنی مفعول معه در کلامشون خیلی نادر استفاده چیه و در قرآن مجید هم نیامده اون را یک که مفهول مهن حالا بعد چون اصل این واق اصل واق ندیگه هست اصل اصل دیگه که ما داریم یعنی که تو میاد اصلشون چیه؟ واقع؟ اصله یعنی واق خلق شده اولا برای چی؟ ها. و هیچ موقع معدوب بر معدوب در ملک مقدم مجد شا. مجد شا. ما و و مقدم به و هم و چی؟ بگیم و هم شده, شده بوده به جای زید. مقدم چون واقعا مقدم نیشه واقعی منییت هم مم که مخلوق در اینه مقدم نیشه نیجا بگیم بگه ولا یکه بزدم و به میتونست مقدم بر فیلس بشه یا نه؟ تو شد گفتیم چی؟ زیدن زرفتو حتا میتونم مخبولون مطلع مخبولون نه همه میتونستن زرف جاو اما مفهول مواده. <BARK> و موادر یه داره که صحیح در حد کن آن اصمی پرکیه و اونجور که این واقع معیلت هم که اصمی نه و اینجا خط در خط بادر چه محقون که را بکنید که و زیدن درست میشه عقب بر زمیر مرفوع متسر بدون زمیر متسر یا فاسر مالکه و زیدن چرا اینو مثال سر؟ گفت مع اونیه که بعدت دل میاد محقوب مع بعدا. فیل با شدیده این مالکه در اینجا ما مثال این مالکه باید بعد از فیل باشه. حالا بعد این لکه. لکه به معنی به معنای یعنی اینجا و در واقع معمول چی بوده؟ زمیر داخل تصمه عامل آمر که یعنی وزیدن شده با انتای داخل تصمه ها میگه داخل تصمه ها میگه این مالکه های مال تصمه های درسته الان ما مای استفاقیه لکه جا رو من گه مطلیم با آقل موقع ما همون همیزه باید باید برای معنایت جلگکه این که قبله که مطابق هست با و اینجا هم امکان ندارد که سی جاحت به جای کام چرا؟ که این عط بر زمین مجرور امکان ندارد مگر به یا حالا جالبت عرض باشد که مالکه یا اف بازه می کنید که توی جه نه اینجا میشه عرض کرد میشه وضعی بود میشه چی؟ وضعی دن بود, دن بود. دن بود. دن عرض شده و مشکلی هم نیست چرا؟ بدلیمه که؟ را اون پاسه به که شده حالا اگر انه نبود بود یا اومد بازم میشه فاصله فاصله یه ده دهیم زنگیر مرد یه متصل ها و با صورت اگر زیگن بخونی محبوب. اگر زیگن بخونی محقولان چرا؟ چون ما اگه عط بخونیم واقعه اصلش توش عمل کردی؟ یه تبقه مارده و عط تبقه عط چیه؟ واقع و اگه عط میشه عط اون عط میکنه و من یک رو تو انعوزه ای؟ وله عط و عط وله بل اولین قبیه عد در دیتا مثال اولی چیه قبیه هست از نظر ایشون عد کردن به زمین مرکوه محفظه و عد کردن به مجدود برست بدونه چیه قبیه ولی دیگران میگن چیه ممتنه ایشون میگه قبیه دل اولین قبیه پس عد نموکنیم مقولون معنیم نظر دیگران اینه که جایز و فل اخیره عد کردن در مثال آخر سائقون، سائق یا جایز حالا در مانند این مثال میگاه و دینهه و عد کردن در مانند زرفت زیدن و همدن واجبون زرفت زیدن و همدن واجبون است. چرا؟ چون اصل در واقع چیه؟ معیق اصل در واقع معیق چیه؟ آتفه بودن است اصل در واقع معیق اینه که آتفه باشه واقع و ما؟ اگر خلاف اصل می کنیم اگر خلاف اصل می کنیم جاییه که چیه دیگه راه چاره برای آوردن خود اصل نداری مثل مثلا سه تو و زیدن راه چاره برای آتف کردن بگیم نداشتیم پس براوری اصل باب شد واقع آتفه و ما اگه معیت درست میکردیم ما خاطره بود برای عطف کردن نداشتیم و وست این بود که اچکار کنیم مساحبت و معیت رو بفهمونیم مساحبت و معیت رو همراه با خایل فت کنیم بفهمیم. اینجا هیچ کدوم از اینها نیست ام کاری نکرده ما بیا کارش کنیم بخواهم همراهش بگیریم با اون هم وایستده و کتک خورده مثل زیدن کتک خورده روشته نه میگه زربت و زیدن بندن اگه باقه رو آفه بگیریم باقه رو چکنیم؟ آفه بگیریم خیلق هست و مریعت هم اینجا معنا نداره زیدو هم هر دو با هم خودش بودم او باب آتفه این کار رو میکنه میبخونه دیگه هیچ قرضی دارید که اینجا مفهول مرد رس کنید بین بند که میگید زرب توتیه رو باید زیدن مفهول رو به باب آتفه امرن به جایه زیدن که میشه اصل و مراهات کرد انسان خلاف اصل میگه دیگه و ثانیه نریده اینجا معناه پس مئیت منا نداریم چون اگه قرار باشه که کتک خوردن رو بخواد بفهمونه کتک خوردن با بابا, بابا حافظه چیه فهمیده بکنیم اینا دوتا شون باعثه من کاری هم نکردم زرفتو اینها رو سفر. پس میگه چی؟ و در مانند زرفتو زیدم برندن کار شد پس یاد گرفتیم که واضح ممولیت بود اگر ما تورستیم عطف کنیم چه میکنیم؟ عطف, کنیم. عطف کنیم. اگر اگ و قصدمون هم چی بود؟ معیت بود اونجا مقبولون و مقبولون مع مقدمه برقیلش هم چرا تو؟ و با آسفه هیچ موجوده تمام شد الخامس پنج و الخامس و ال و کی؟ یادتونه که به دارد، دارد زرف هم می‌گفتن مبهم زمان اگر مبهم و هر بشه به چی؟ قابلون هستن به تقدیر بی تقدیر پی یعنی چی؟ یعنی معنای ذرفی یک درش بشین نه این که واقعا پی بشی تقدیر همونطور کتاب دعیه میخواستش مفضول ده به تقدیر لام میدونی یعنی چی؟ یعنی تحمیل بگیر هم مفضول دی و خبه اسم و زمان و مکانی اسم زمانی یا مکان زمان رو نمیگه با کنید مهمد اسم زمان مقدم اما و مکان ظرف مکان اون که معایم بود در اونی به جز دیگه. اگر ظرف مکان معایم باشه اتما باید بیزه کرد و اگه پی بکنیم دیگه بهش مفهولان فی گفته نمیشه بهش میگن سلید فلمسجد فلمسجد میگن چی؟ دیگه او مکان مفهولان او به منزلت اهدم ما یا به منزله یکی از این اینتان به منزله ظرف زمان یا به منزله ظرف مزت سرک <متحدث> و اشرینا فرسخن یه چی؟ یعنی مسافرت کردم حرکت کردم نیست فرسخ اشرینا مکان نیست ولی به اعتبار فرسخ چیه؟ مشخص <متحدث> شد نازل به منزله یکی میگه و باقا اسم و زمان او مکان ای مبهم ای او به منزلت اهده ما این اسم منصوب به فعل به فعلت این اسم منصوب است به یک فعلی که اون فعل انجام داده شده در این زمان یا بیه میخوا به زمان یا این مخصوله منصوب است به فعلی که انجام فعل داده شده در از نه به مثال جئ تو یومل جمعه جئ تو یومل جمعه جئ تو یومل جمعه جئ تو میرو باید یومل تو معده بزار بزار خواسته در این زرف مفروبه بالاش بگه جهتو تو یومه میشد زرف چی؟ قیر مهند جه تو یومه سمت و دهرم و خلف از ایده بیتونه از مای جهات رو بکنی اونا چی هم؟ همه مکانهای مونه سلعی خلف از نماز نماس پشت سلبه ای تو قلبه منصوب مفعولن مکان مبهمه مال چون مشخص که چه مثلا یه متر بعد از تو اونجا و تو سر تو نازل منزله زمان سر تو فرسخن نازل به منزله یه نفر برمیگرده میده که شما گفتید که از مفهوم کلامه چون خلاص این چون خلاصه از بیگه کتاب میگه از مفهوم کلامه تو یا ما از بیرون که تو کتاب ادایه کندیم اینو فهمیدیم که چی؟ که ظرف مکان آنچه معنیم بود چاره در اون نیست به جاست زکر ظرف مکان هرچی که باشه چاره در اون نیست به جاست زکر بودیم بودیم نیزه خب بودیم خب دخل تو داره سکن تول بیت سکن تول دخل تو داره تول و دار دارم مشخص دخل تو داره یعنی وارد تو تول یعنی ساکن شدن در این خانه در این سکن بیتر. چرا بس بدون اینا اومده تو قرآن هم هست جنات یاد خولن آه یاد خولن آه میگه یاد خولن؟ اد خول آل میگه نمیگه اد خول به جنت درسته که آل جنت معرفت کردی. چرا نیه؟ میگه این دو تا بیل استثناس سکنده و داخل دوشه که بازدارن مکان معاین هم که جرمیان بدونه بدونه بزن میگه و اما مانند دخل تو دار فمفغولون به مانند دخل تو دار رو ما بهش میگیم چی؟ مقبولم. دیگه نمیگیم مفغولون فی که قانونمون چیه؟ نمیگه شد پس این طور نتیجه میگیم كه چی؟ كه بنابر قوله قوله که چی؟ که بنابرای قول اصح قولی که صحیح تر از نظر شیخ بها رحمه الله این است کسی که, که دخلا و سکنه به مکان وای معین بگه متعدی میشه یعنی دخلا و سکنه فعل لازم فک نیست اما متحدث فقط متحدث نسبت به چه چیزایی ضرب تو میتونه همه چی رو به عنوان به ببرد ضرب تو امار ضرب هم. تو زید ضرب تو بک ضرب تو برده. هم بعد اما دخلا و سکنه مفعول به فقط برای مکان اونم مکانه مهنگه همه یه دونه پس دخلت رو میگیم چی؟ الان دخلت رو داره دخلت رو بله باید از داره مفهول رو سکلت رو بیتم همیده و نمیگیم بهش مفهول رو که شما اشکال کنید به ما که بگید مفهول اگه مقدر یه هم باشه چاره در اون نیست به جز ذکر مشقق خب چلا گفت علال اصل ندر یک ادبه از آقاییون اینو بهش میگن منصوب به نظر خافظ اینه میگن چی؟ منصوب به نظر خافظ اون نبیاده تو نظر نیست یعنی حرف جردش افتاده شده چی؟ منصوب و ایلا منصوب نبوده. اصلش بوده دخل تو فدار و اصلش بوده سکن تو فنبی این منصوب به نظر خافظ خب چون منظور بن از اخباره باید وجود خاطر در کلام بیشتر باشه یعنی ما مثلا فرض کنیم بگیم وقتاره موسی و او ما هو سامینا را یعنی مثلا یعنی وقتاره چی من گوری صادینا را جلورا اخباره با من بیاد خیلی زیاده 90 درصد با من میاد اگر یکی دو در هم هم بدون منبیات بشون منصوب به منصوب به نظر پاکز اونجا هایی که چی؟ حرف جر افتاده یعنی بیشتر نیاز دو عبارات بلی در یک جا افتاده میگیم یک جا حرف جر افتاده اون مجرورش منصوب شده واسطه منصوب شده بشون میگی منصوب به نذر یعنی با شدن. شدنه پاکز حرف جر اما در این مثال دخل داره هیچ یک مورد دیده نشده که چی؟ بگیر دخلا سکنه بدونه با فی بیار. همه جا بدونه بی بیار خب باید معلوم اگه منصوب به نظر خواب باید اگه باشه در منصوب به نظر خواب که ما کنیم حرف جر رو زکر کنیم ولی اینجا حرف جر رو زکر نمی کنن. لذا چون این اشکال وجود داشته مرحوم شیخ خ مفنو اون بدون دونه حرف جربب میدهده پس یعنی فعل دخول بر کی واقع شده بردار فعل دونکونت بر کی واقع شده بر فعل مفهوله نه اینکه که منصوب به نظر خوافض چرا منصوب به نظر نباشه بدنه این که اگه منصوب به نظر خوافض باشه یعنی یه چا دو چا سر چه اخصاده بعد در جایی دیگه چی بشه؟ ذکر بشه ولی ما اون ده در جاغ تمام. منصوب به نظر اقاقیز توزید بدن مرخصه از المنصوب به منصوب به و اسم و و این منصوب اسم هست آه؟ یعنی اسم اسم اول محبب یا اسم چیه محببه اسم محبنه مثل چی مثل انتصورو خیلی اوند شوید. شوید. شوید. شوید. اولا یک به انا انزلناهو نه این که دارم انا انزلناهو چی؟ پس بنابراین اسم معبد یعنی اسمی که تحویل برده شده یعنی اسم اسمی که ما از تحویل هن یا هن دست کنیم المنصوب به و اسم سریع اول محبت المنصوب به فعل. این اسمی که صریح یا معقله منصوب است به فعل و به فعل لازمه منصوب است به یک فعل لازم منظور از فعل لازم یعنی فعلی که قادر به برداشتن منظور از فعل لازم یعنی فعلی که قادر به برداشتن آن منصوب بدون واسطه نیست. منصوب است منظور از فعل لازم یعنی چی فعلی که توانست است آن منصوب به نظر الخافز را بدون واسطه بردیر لذا این الان منصوب شده به تقدیر حرف جر با تقدیر و مقدر کردن حرف جر. حرف جر و فعله بران بر تقدیر لذا کلمه ما از حالت با واسطی به بی میگه وحوه قیاسی جون این مفقور این منصوب به نزر خوافز قیاسیه با دوتا کلمه وحوه قیاسی نه ان و انه با ان و انه که محضر محضر درست کنن با این دوتا قیاسی یعنی قبل از ان و انه یه حتی جد میباشیم می چی بشه محض بشه البته به شرط این پیش نه بالاش دیدیم به شرط این الان نگاه کنیم آیه رو نه بود اوه عجب کن اوه عجب کن و باقی آتفه همزه استفاد چون صدارت تام داشته برش چی شده؟ اوه عجب یعنی آیا و آیا عجب کن تحجب کردی؟ آیا تحجب کردی؟ انجا اکم ذکرون من رب بکن؟ این عجبتون فیلو خاله. و اگه بریم به چه ها به لغت مراجعه کنید میبینیم که عجبه با چی تردیم شد با من میگیم عجبتون منو کن عجبتون منو کن یعنی تحجب میکنم از تو به شگهتی در نیام از تو عجبتون منکر. الان انجاکون دقیقه به مستر میره دقیقه به مستر میره هنه مستریه است، ما مابدشم خب این انجا هرکوم در مزدر بره و از بشه برای جهتون و مخبول جهتون با چی میاد؟ با من پس بنابراین ما بگیم چی؟ انجا هرکوم رو این مزدر محضر منصور به نظر خافظ منصوب این مزدر محضر محلمن به نظر خافظ و حرف جرم اینجا یه دونه بیشتر نیست چیه؟ من من حرف جرم که حالا ببین ان ان جاعف کم منصوب به نصب من با خودشیه منصوب به نصب جاع الهی گونه من رب بکن یعنی ذکری که از یعنی ذکری که این صفت رو در از من با با با م... خب الان دیدید که این با چی اومد؟ با اند. حالا عجب تو انده زیدن غایی باز عجب تو برو؟ خاهم انده چی؟ انده اروفه مشبهت بده. به اسمش خاهمان خبرش انده تعبیل به مستر دیگه. این مستر محفظ مالی محلی داره؟ محلن منصوبه به نده خاطه هر که حسن چی میده؟ چرا چون ماده که با چی پس غصف حرف قبل بلده ما گفتیم به شرط که لپس پیش, پیش مثلا اگر من برگردم این اینطور بگم رقب تو واقعی رقب تو که تو دی انکه انجا رغب تو بی انکجا طنجا من به آقای گفتم رغب تو بی انکجا انجا حالا این همین جمله رو بنویسید به جای بی ان حرف جاز به جای بی چی دادی ان حرف جاز میشه چی بوقی یعنی, یعنی من خوشم میاد دوست دارم که تو چیه قبول شی دگوبو می یعنی بدم میاد بی می خوشم نمیاد که تو, تو چیه راغب بوقی یعنی من داشتن تمایل داشتن رقبه با ان یعنی بودن و دیگاه بودن هم داره هم نتی و من رقبه ان یعنی این از باشه بعدش بیاد از این حالا اگر همینجا می گفتش که من رقبه فی سندتی پس بنامه این میریم اینجا آیا میشه پی را هست کرد یا هن را هست کرد؟ نه الان اگر تو اون جمله بالا یا خایی پی را یا هن را هست کردیم اون مخاطبه ما از کده بفهمی که اینجا پی را هست کردیم؟ اگر بگه رقف کن انکه پنجه این مهمم میشه رقف تو انکه پنجه یعنی کسی کنم تو قبول یا دوست کنم تو قبول نشی اگه پی تفتیر بکنه یعنی قبول بشن. اندردور بکنه یعنی چیه؟ قبول نظاف از بنابراین هست به هر دو جر قبل از هنوانه چیه؟ خیاسی به شرط این که چی؟ مست سماییون و در موارد سماییه غیر از این مورد در بقیه سمایی سماییون بیغیر زاده چنه غیر این دو مورد هنوانه نه بود زرب تو شامه زرب تو شامه یه یعنی زرب تو اللش شام قرآن خبر تو اللشت خبر تو اللشت زرب تو عمر زرب تو شامه خبر تو زرب تو شامه فعل زربه هم به شام فقط منصوب بنابید به میاد. بنابید فعل زربه فقط با شام منصوب بنابید دو کلمه شام دیگر نمیتونم بگم زرب تو عراقه غلبه باید بگم زرب تو علال اعراب چون اینجا دیگه منصوب به نظر الغافه سماعیه یا غیاتیه سماعیه یعنی سماعی یعنی چی یعنی فعل صحبه با شام بدون اعلا شنیده شده و ما نمی‌دونیم اما فعل ذهب با غیر شام باید بعد چجوری باید ها بعد یعنی دستمادی که ها دستمادی که مثلا و آیه قرآن وقتار نوسا غوم عموض ثبین رجولن rene غوم عموض ثبین رجولن اختاره چند مفهوریه یه مفهوری مفهورگوش محوظ رو با چی می‌داره با من مفهورد اولش رو به نفس اه دومش رو با من حالا نزی 재ھونی مفهورد اولش چیه؟ ثبین رجولن یعنی اختار عموضا ثبین رجولن بخیار کنیت جا بخیار آきا افتاد نفر محبول سانه چه با من برداره بگه من قومه از قومش از میان قومش افتاد نفر رو انتخاب جاره. ولی به که من قومه کفته چی؟ قومه. این الان دلمان نمیتونسته لازم بوده نمیتونسته بردارد قوم رو منصوب باید با من برمیداشته حالا که منصوب شده بشه میکیم منصوب به نزعه حالا اختاره میشه حالا فعل دیگر هم ما میتونیم براش قیاس کنیم مثلا از رو نه هرچی رو که آمده از در این خصوص از کلام هرم قبول میتونیم هرچی که نه نه تا جاها اومده قبول جا جاها میگیم جاها نیم اومده اختاره اومده اختاره مونتا اومده. اومده و مواردی اینا قیاسی بیست زماهی زهبه هم با شاب اومده دیگه با او. از و الهال هفتم حال هست هفتم از منصوباتیه دفعه بگه الهال و وحیه الفوزدتو فوزده چی؟ یعنی رکن کلام نیست یعنی مصند یا مصنده نده نیست المباین ازون الهیه ای دیز که مباین از بیان کننده توضیح داند است هیچ رو اشکال نداره باشه علی فوزدها یا از اصفتو صفت یعنی چی باشه اگه صفت یعنی مشتق یعنی حال اولاً و بذات باعث چی بشه مشتق صفت اس البته حال با یوقات اسمم نمیاد ها حال با یوقات اسمم میاد لذا عجب صفت باشون از قذره هم باعث کارتون می یعنی قذری که خیلی دیگه است دیگه چی صفت است و فضله. یعنی رکل کلام نیست حال و از طرفی هم چیه؟ صفت مشتبه حال اگر جامعه هم بیاد باید تحبیل به مشتبه مثلا بگیم جا از زیدون حسدن جا از زیدون حسدن یعنی چی؟ یعنی آمد زید در حالی که شیر بود منظورشون از اینکه در حالی که شیر بود نهی که شیر حقیقی یعنی چی؟ شجا این حسدن تحبیل میگه وحیع از صفتو المبینه چون مبینه از حیعت یا یا هر یا مفهول یا هر دو سی وبه میگه حیعت مقتدار گفت صفت است که مبیّن حیعت است تا اینجا شامل صفت هم میشه یعنی تا این که علام گطهیoi شامل صفت هم میشه چون وقتی شما بگی رجلون راکبان این راکبان صفت هست یا اینست مشتقه مبیّن حیعت نیست حیعت رجل رو بچه اینجا شامل صفت هم نیغیثت نظام میگه نه غیرنه نه نت یعنی اونی که مبین حیعته مشتخمه هست صفت نیست اون فقط چیه؟ حال آره. هست فقط بارد این قیدن نتابقه به نتابقه بود. حال چند تا شرط دارده و یوشترت و تنکیر شرط اول حال اینه که باید حال نکره بودی جا از ایدون را شرط اولش چیشو؟ نکره بودن حال و اگر یک زمانی معرفه بیاد بعد بگی تبدیلش می‌دیم اگر یک جایی حال معرفه بیاد باعث شد تبدیلش بورد نکره بعد نکره گفت گفت نکره است در ظاهر اگرچه در ظاهرش الان چیه مثل مثلا مثلا خاص بدی جا ازیدون بحث کرد جا انگو تشهد و انلا اله ما وحته این جاع زیدون وحتهو بگید جا نهیم زیدون چی؟ وحت الان مستر اضافه شده به هو کس به چی میکنه؟ تعریف میکنه ولی ما باید بگیم که این درسته که اضافه شده و رو تعریف کرده ولی در واقع وحتهو در تعریف چیه به که به تعریف شده چیزا میگن بود به منای منفردن واحدن جاهزه ایدون باید و تنگیر کونها منتقلت میگه حال اقلب به طور چی؟ قالب کون ها منتقل هستند حال حال منتقل است. در مقابل حال منتقل هستند حال سابق است، حال دائمه یا سابق حال منتقل هستند کدومه؟ مثل این مثال رعه ای تو هندن زاهی کنند رعایت و تو هندن کردن یعنی چی؟ یعنی دیدم هند رو در حالی که میخوام. حالا امکان داره یه زمان من ببینم هندو و نخنده ها احتمال داره که این حال از اون ظاهر شد این اگر این احتمال درش بره حال میکن حاله چی چی؟ منتبه حاله چی چی؟ منتبه چون احتمالش هست داشت که من ببینم اون رو به جایی که بگم رحه ای زایی یا ساکت هستن حال دیگر احتمالش یه شما اما حال دائمه حال دائمه یا ثابته حال که این احتمال درش داده. این احتمال درش داده مثل یوما او باعث حیا، یوما او باعث حیا. یعنی چی؟ یعنی روزی که برانگیخته شدم من، به چه شک برانگیخته بشه؟ حیان در حالی که زنده است. حالا افرادی داره برانگیخته شدن باشه اما زندگی توش نباشند زنده چی این حال دائمه است و ثابت است برای فرد. به حال چی؟ دائمه و صحبه. منتقل به حال دیگر نمیشه بگیم یوم و عباس و مثلا یا حال دیگر بعثی اگر باشد حیانیت و بودن چیه؟ زم نفسد مشخصه پس حال منتقله در مقابلش چی داشتیم؟ ثابت و دار کدوم بیشتر بود؟ منتقل. حال مشتقه حال 90% مشتقه مثل همین به که الان زدیم حیین مشتق بود یا نبود زاهکتن مشتق بود یا نه. اما بای موقعات هم جامد میشه مثل چی؟ در مقابل حال مشتقه چیه؟ حالا جامده مثل جا از ایدون حسدن جا ایدون یعنی چی؟ یعنی شجامد اون جایی هم که جامده بیاد باید تحبیله به؟ از چند درصد حال جامله؟ ده درصد چند درصد؟ مشتق درصد اون ده درصد با هم آن درست شد به ها زمانن حال از جهت زمان زمانش با عاملش یکی حال از جهت زمان زمانش با عاملش چیه؟ یکی از نظر زمان اینو بشمیگن حال مقارنه حالش چی؟ مقارنه یعنی حالی که مقارنه با ها رو خوده با عامل درها رو خوده از جده زمانه. مثل ایه. همون مثالهایی که زدم او اصحاییات هر زمانی که بحث صورت بگیره همون زمان هم حیبودن هست. هر زمانی که چی؟ دیدن هست صورت بگیره همون زمان هم تنده مجید ده زمان ها چیه؟ زمان ها حالا اگر یک زمان اگر اگر زمان در مقابل حال مقارنه حال مقارنه دیگه در مقابلش حال مقدره هست. در مقابل حال مقارنه حال چیه؟ مقدره حال مقدره بودونه آنکه که زمان حال بعد از زمان حال بعد از عاملش می میباشه ولی در زمان وقوع عامل نیت و تقدیر آن حال شده <تصفيق> یعنی زمان حال چیه بعد از عامل ولی اون زمانی که عامل داشته صورت میگرفته چی؟ نیت این که اون حال تحقق پیدا کنه مثل ادخلوها ها خارجی ها وارده به هشت در حالی که چی هستی؟ خالدی ناره مقدره است. چرا؟ به که اون زمانی که دارن داخل میشن پاشون از دمون پای در گذاشتن تو اون زمان که خالد میدن جابدان میدن تحققی نداره زمانی از اون اون جابدانگی نیست آه؟ و زمانی هم که جابدانی میشن دیگه داخل شدن معنا نداره داخل بخورده در همون زمانی که پاشونی میزنم تو بهش دیگه چیه؟ دخلیرشون چیه؟ که در اونجا بگه پیرون ها؟ حاله چی چی؟ یا مثل این آیه لطدخلون نلمست که در حرام سنو رو دیگه چه در حرام انشاءالله انشاءالله شما در آینده وارده چی میشید؟ محلقه و تدخلون در مسجد در حرامه المسجد در حرام مفلوم یا و تدخلون در در حرامه انشاءالله آمنینه آمنین محلقین رو اوسکو و مغذرین محلقین ساکون و هندوه های جنوب سخن و با واسات الان چه تا حال یکیش حالو مقاینه میشه پاتعلولن نل دست در حرام 14 شما وارد مسئله حرام میشین در حالی که چی هستین آمین چی در امر مثل امسال نیست که جلوتون گرفته باشن سال آینده وارد میشید همش از شهر رفتن بیرون شما در امانیت کامل میشید حالا همون زمانی که وارد میشن در امنیتن یا بعدش امنیت پیدان همون زمان که دارن وارد میشن امان کامل دارن این آمنی نمیشه حال چی چی؟ حاله مقارنی دخول. اما محلحین رو اوستکم سرها تون و مغصرین ناخن ها تون رو اعمال حجه زمان دخول با زمان این اعمال چیه؟ زمان بلی. بلی و تاس ها باشه همون زمان که وارد فصول حرامش اندرش به وصلت و قرارداداتی تلاش می‌کردن بله نغم ها رو بله و رو غیرتشون باعث برداشتن حال چی؟ معذبین علی روسا تو حالا نگاه کنید وقعدت تکون وقعدت تکون یعنی گاو می‌گاد تکون ثابته در مقابلش چی؟ داددن در مقابل مشته جامعه در مقابل مشترک مقطه در مقابل مقابل مثال ها